مباحله میخواد بکنه پیغمبر یعنی اوج قدرت نمایی پیغ... نیست مگه یک زمان شما آقا محاجه میکنید محاجه مباحله نیست محاجه چیه؟ یعنی حجت آوردن یعنی استدلال کردن بنده میگم حق با منه شما میگید حق با منه میگیم کی قرار بذاریم با هم بحث کنیم میگه فردا ده صبح من اگر یک کمی آدم دقیق باشم تا ده صبح فردا چی کار میکنم؟ به مدارک مراجعه میکنم به منابع خودم رو مجهز میکنم به اندازه ای که میخوام با شما بحث کنم از ادعای خودم بر بیام فردا میام ساعت ده شروع کنم با شما محاجه یعنی دلیلم رو ارائه دادم مباحله چیه اون که استدلال کارایی نداره قدرت مافوق مادی رو به خوب دقت بفرماید چی عرض میکنم؟ قدرت مافوق مادی رو برخ کشیدن یعنی بنده با شما میخوام بحث کنم شما میبینید من منطق سرم نمیشه استدلال سرم نمیشه از طرف دیگر اگر ماورای این استدلال ظاهری اعمال قدرت بتوانید بکنید نکنید امر بر دیگران مشتبه میشه اینجا میگید حاضرم مباحله کنم مثلا چی؟ آقا حاضری هر دو بریم تو آتش هرکی نسوخت حق با مباهله. حاضری دعا کنیم از آسمون بلا بیاد هر کی باطله او بلاگیر بشه اینه میگن مباهله خب سران نصارا اومدن با پیغمبر کار به چی رسید به مباهله فردا صبح قرار خب یعنی هر کس هر چی تو چنتش داره باد بیاره دیگه ولی چیو بیاره استدلال رو مهاجک نیست استدلال بیاره مباهله است یعنی قدرت معنوی هر چی داره بیاره همه منتظر بودن پیغمبر چی میاره دیدن وقتی پیغمبر میاد علی اینجا، فاطمه اینور، امام حسن اینور، امام حسین اینور یعنی تمام قدرت معنوی که خدا به پیغمبر داده در این علی و فاطمه و حسن و حسین داره تجلی میکنه